سر سیب در قلمرو پادشاه ساحل سپید. در زمانای بسیار قدیم پادشاهی تو ایرلند زندگی می کرد که دو پسر و یک دختر داشت. روزی از روزا دختر به باغ بزرگ پدرش رفت و درخت سیبی دید که فقط یه سیب داشت. اون سیب و چی خورد در نزدیکی قصر فالگیر پیری زندگی می کرد که خارج شدن دختر پادشاه را از قصر دیده بود. و پس از برگشتن او جلو رفت و گفت وقتی که داشتی میرفتی مثل یه دوشیزه بودی اما حالا که برگشتی مثل یه زنی هستی که ازدواج کرده باشه در اون اطراف چند نفر این حرف شنیدن و این خبر همینطور دهم به دهم پیچید تا به گوش پادشاه رسید پادشاه پس از شنیدن این خبر فالگیر رو صدا کرد و گفت این چه حرفایی بود که تو به دخترم زدی؟ فالگیر گفت من چیزی نگفتم. پادشاه گفت: "باید حرفایی رو که به دخترم زدی به منم بگی و اونا رو ثابت کنی. در غیر این صورت سرت رو به باد خواهی داد." فالگیر گفت: "حالا که میخواین همه چیزو بدونین، باید یه فرصت به من بدین. اگه در عرض چند ماه به شما ثابت نکردم، اون وقت سرم رو از تنم جدا کنید." یه روز شاهزاده خانم به بالاترین نقطه قصر رفت، جایی که هیچکی نمیتونست اونو ببینه، جز خدمتکارش. اون همونجاون مون تا اینکه یه پسر زایید که یک خال طلایی رو سرش و یه خال نقرهی رو پیشونیش داشت این پسر زیبا و گلگون با سرعتی خارق العاده رشد کرد اون به سرعت قد کشید و خیلی زود به اندازه پسرای پادشاه که داییاش بودن شد یه روز که برف زمین و سفید کرده بود پسرای پادشاه به شکار رفتن و خرگوش شکار کردن خون خرگوش روی برفای سفید ریخت یکی از پسرو گفت چه ترکیب رنگ جالبی، چه قرمز خوشرنگی صورت هیچ زنی نمیتونه به این خوشرنگی باشه؟ اون وقت به قصر برگشتند، از فالگیر پرسیدن آیا زنی پیدا میشه که رنگ صورتش به اون زیبایی باشه؟ فالگیر گفت، زنی که شما میخواید اتفاقا تو همین نزدیکی هاست. یکی از پسرا گفت، فقط به ما بگو که اون کجاست. فالگیر گفت، اون دختر پادشاه ساحل سپیده که صدها رقیب به خاطرش سرهاشون رو از دست دادن اگه شما هم صدتون به تنتون زیادی کرده میتونین امتحان کنین پسر بزرگتر گفت ما اهمیتی نمیدیم و به ساحل سپید میریم اونا هیچ کشتی یا وسیله دیگه ای نداشتن تا با اون به ساحل سپید برن پسر بزرگتر گفت من یه کشتی میسازم و صبح فردا وسایل ساختن کشتی رو فراهم کرد و کنار ساحل شروع به کار کرد همینطور کار میکرد که ناگهان یه صدا شنید که بهش گفت پسر پادشاه شما چی میسازی و کجا میخوای بری؟ پسر گفت من در حال ساختن کشتی هستم تا به اون به ساحل سپید برم. اون صدا گفت ممکنه تو این مبارزه عادلانه پیروز بشی. پسر همچنان به ساختن ادامه داد ولی وقتی غروب شد چیزی نساخته بود جزی لونه بوغلمون وقتی به قصر برگشت از اون پرسیدن چی ساختی؟ جواب داد چی؟ من فقط یه لونه بوغالمون ساختم. برادر کوچیک‌تر گفت تو احمقی بیش نیستی و به درد هیچ کاری نمیخوری. و صبح روز بعد خودش تصمیم گرفت که کشتی بسازه. پس به کنار ساحل رفت و شروع به کار کرد. ناگهان یه صدایی گفت: پسر پادشاه شما چی میسازی و کجا میخوایی بری؟ پسر جواب داد: یه کشتی میسازم تا به ساحل سپید برم. صدا گفت: ممکنه تو این مبارزه عادلانه پیروز بشی. پسر تمام روزو کار کرد ولی هنگام عصر هیچی چی نساخته بود. جزی طویله و خسته به خونه برگشت. حالا هر دو برادر غمگین و افسرده بودن چون هیچ نتونسته بودن کشتی بسازن تا با اون پیش دختر پادشاه برن. روز بعد بلایمن پیش دایاش اومد و گفت وسایل و ابزار منو بدین شاید من بتونم کاری انجام بدم. دایاش گفتن وقتی ما نتونستیم کشتی بسازیم تو میتونی؟ این اصلا امکان نداره. بلایمن گفت، هیچ مشکلی نیست. بعد ابزار کار رو برداشت و به ساحل رفت. اون صدا دوباره به گوش اومد و گفت، بلایمن پسر سیب، شما میخوایی چه کار کنی؟ و پاسخ شنید، من دارم یه کشتی میسازم. اون صدا گفت، ممکنه موفقیت نصیبت بشه و تو این مبارزه عادلانه پیروز بشی. بلایمن به کناره جنگل رفت و درخت بزرگی رو نشونه گرفت. با یه فوت قوی درخت و از جا کند و اونو به کنار ساحل آورد و کشتی بسیار زیبایی ساخت که هیچکی تا اون زمان کشتی به اون زیبایی ندیده بود سپس با یه فوت دیگه اونو به آب انداخت و خوشحال به خونه برگشت پسران پادشاه از اون پرسیدن آیا تونستی حتی یه لونه بسازی؟ بلای من پاسخ داد خودتون برید ببینید وقتی اونا بیرون رفتن و چشمشون به کشتی افتاد از تعجب زد. و به بلایمن حسودی کردن حالا که تو این کشتی رو ساختی پس میتونی به این مبارزه عادلانه بری. فردای اون روز بلایمن برای یه سال آذوقه جمعوری کرد و روی کشتی برد و همه چیزو برای سفر آماده کرد. بعد به خونه رفت تا از مادرش خداحافظی کنه. وقتی برگشت کشتی خودش دید که از بندرگاه دور میشه. پسران پادشاه بودن که کشتی رو به طرف اقیانوس به حرکت در آورده بلایمن فریاد زد این عادلانه نیست. مادرش که فریادش فریادشو شنید گفت چه خبر شده؟ پسر گفت کشتی رو من ساختم اما اونا اونو بردن مادرش با اون همدردی کرد و بسیار متاسف شد و گفت تو هنوز یه پسر بچه هستی استخونات هنوز محکم نشده اونقدر بزرگ نشده که به فکر سفر و سرزمین های ناشناخته و غریب باشی پسر گفت هیچ چی نمیتونه مانده بشه که من به این سفر برم پادشاه پدر بزرگ بلای من گفت بسیار خوب من برای تو کاری میکنم که برای هیچ کس دیگه ای انجام ندادم پسر گفت اون چیه؟ پادشاه گفت من شمشیرم رو به تو میدم تا زمانی که اونو تیز و برنده نگهداری هیچ مردی نمیتونه تو رو شکست بده بلای من قصر رو ترک کرد و چون به دریا نگاه کرد کشتیش دید که در حال رفتن بود بیدرنگ دوید تا به دهنه بندرگاه رسید و با یه پرش بلند خودش رو به کشتی رسوند. دو شاهزاده وقتی خودشون خودشونو تو کشتی دیدن مات و مبهوت شدن و نمیتونستن بفهمن اون چطوری خودشو به اونا رسونده اما از اینکه اون تو کشتی بود خوشحال بودن کشتی همچنان موجهای سبز و اقیانوس و در هم میشکست و پیش میرفت. ناگهان باد تندی وزید و کشتی رو با خودش برد تا به دریای سرخ رنگی رسیدن که بسیار آرام و زیبا بود وقتی باد از حرکت ایستاد اونا با پاروهایی از ساحل معطر کشتی رو تو دریای سرخ پیش بردن با هر پارویی که میزدند نزدیک به پنج مایل جلو می رفتن. تو اون دریا ماهیا و خوکای آبی و گلای حیولا مانندی بودن که آواز می و با این کارشون به مردا جرأت بیشتری میدادند. پسرای پادشاه و بلایمن هرگز دل سرد نشدن و همچنان در دریای معطر پیش رفتن تا بالاخره به سرزمین ساحل سپید رسیدند که بسیار تمیز بود اونا کشتیشون رو یه جایی بردن که هم از باد و هم از خورشید در امان باشه. بعد یه لنگر بزرگ تو دریا و یه لنگرم تو خشکی انداختن و کشتی رو طوری محکم کردن که در تمام روز یا حتی در طی یک سال تکونی نخوره. اگرچه اونا بیشتر از یه ساعت کشتی رو ترک نمیکردن. صبح روز بعد هنگامی که هوا کاملا روشن شده بود اونا در مقابل خودشون یه جنگل بزرگی دیدن. نمیدونستند که اون سرزمین چگونه جاییه. بلای من به دایی بزرگتر گفت ممکنه شما بری ببینی که این سرزمین چطور جاییه؟ شاهزاده بزرگتر اکشتی خارج شد و قدم به جنگل ناشناخته گذاشت. به آهستگی از میان درخت رد شد و ناگهانی نور قوی از درون جنگل درخشید. اون به قدری ترسید که بیدرنگ برگشت و به طرف کشتی دوید. بلای من پرسید چه خبر شده؟ شاهزاده گفت همینطور که میرفتم نور بسیار قوی به چشام خورد که نتونستم به راهم ادامه بدم. بلای من به دایی کچکتر گفت خوب پس تو برو ببین تو این سرزمین چه خبره؟ برادر کوچکتر نیز نتونست بیشتر از برادر بزرگتر بره و خیلی زود برگشت و گفت بهتر کشتی رو حرکت بدیم و به خونه برگردیم بلای من پسر سیب وقتی شجاعتی تو اونها ندید گفت من میرم اگه امشب و شبای دیگه برنگشتم شما منتظر من بمونین ما به اندازه یک سال آذوقه داریم بنابراین تا یک سال منتظر بمونین و اگه برنگشتم میتونین به خونه برگردین بلایمن با اونها خدافظی کرد و وارد جنگل شد طولی نکشید که اون نور رو تو جنگل دید اما ترسی به دلش راه نداد و به پیش ادامه داد او همچنان رفت و رفت تا به درختای عجیبی رسید که دور از هم و در هر طرف پراکنده بودن از میون این درختها ها عبور کرد و به یه دشت وسیع رسید وسط این دشت پهناور یک قصر زیبایی وجود داشت و جلوی قصر دوازده مرد ورزیده با نشونهای مخصوص روی بازوهاشون ایستاده بودند. نوری که بلایمن در جنگل دیده بود از شمشیرای این مردمون عکس میشد پسر سیب به طرف اونا رفت و تو جاده باریک کلبه ای رو دید همچنان که از کنار در کلبه میگزشت پیرزنی بیرون اومد و به اون سلام کرد و گفت صد هزاران بار بهت خوشامد میگم من پسر سیب از سرزمین ایرلند بلای من گفت متشکرم خانوم خوب شما منو میشناسی و نسبت به من محبت داری اما من شما رو نمیشناسم و هیچی از شما نمیدونم زن گفت بله من شما رو میشناسم و متاسف هستم بلایمن گفت چرا تاسف جواب داد متاسفم از اینکه در اینجا هستی حتما اون دوازده جنگجوی ورزیده رو میبینی امروز باید استراحت کنی و از فردا با اونا بجنگی بلایمن از نصیحت و راهنمایی های زن تشکر کرد. زن اونو به کلبه خودش برد و چنان غذای خوشمزه براش آماده کرد که در تمام عمرش هرگز اونطور غذا درست نکرده بود. و چنان رخت خواب راحتی برای بلایمن فراهم کرد که اون در طول زندگیش ندیده بود. دیری نگذشت که بلایمن تو خواب عمیقی فرو رفت. وقتی سپیده سر زد و صبح از را رسید از خواب بیدار شد. پیرزن سبونه مفصلی براش آماده کرده بود اون بعد از خوردن سبونه با جرأت تمام به قصر پادشاه رفت جلوی دوازده مرد رزمنده یه مرد قولپیکر با اندامی ورزیده آماده بود تا هر لحظه شمشیرش رو بکشه بلای من با شمشیرش چنان اونو به زمین زد که صدای فریادش در تمام محبته قصر پیچید پادشاه که تو قصر بود این فریاد شنید و همچنان که به سمت پنجره میرفت گفت خوبه خوبه از زمانی که من اینجا هستم هرگز چنین زربعی زده نشده و همین که جلوی پنجره رسید بلای من و بیرون قصر دید پشت قصر دیوار بلندی بود که روی اون میخهایی نصف شده بود روی بعضی از این میخها چیزی نبود روی بعضی سرهایی بود که تازه باریده شده بود روی بعضی سرهایی بود که کمی گوشت داشت و روی بعضی دیگر فقط جمجمه بود این صحنه ترسناک هر بیننده ای رو به وحشت منداخت. چی رو میخوای؟ اینو پادشاه گفت و بلایمن پاسخ داد یا دخترتون به من بدین یا میجنگم پادشاه گفت اگه جنگ میخوای کمی نزدیکتر بیا دوازده مرد جنگجو آماده بودند تا بلایمن قدمی به جلو برداره نفس در سینه ها حبس شده بود و اگه کسی بلایی منو تو اون حال میدید دلش به حال اون میسوخت چون باید با دوازده نفر میجنگید بلای من قدم به جلو نهاد و شمشیرش رو کشید جنگجوها به اون حمله ور شدند و اون از خودش دفاع کرد با اینکه بلای من هر دوازده جنگجو رو زخمی کرد اما اونا من رو به عقب روندند هوا در حال تاریک شدن بود که بلایمن به شدت عصبانی شد دیگه خونش به جوش اومده بود و با قدرتی فوقالعاده به اونا حمله کرد و در یک پرش بلند با شمشیرش سه ضربه زد و با همین سه ضربه سرای هر دوازده جنگجو رو از تنشون جدا کرد و به خاک انداخت بعد اونجا رو ترک کرد اون به شدت زخمی شده بود به کلبه پیرزن رفت پیرزن گفت اوه بسیار خوشحالم از اینکه بلایمن من پسر سیب هنوز زنده است و به طرف دیگی بزرگ رفت مقدار معینی زهر در آن ریخت و با مقداری آب مخلوط کرد سپس بلای منو تو دیگ قرار داد و پس از مدتی اونو از دیگ در آورد و در دیگ شفا گذاشت وقتی که بلای من از این دیگ در اومد کاملا سالم و سرحال به نظر می پیرزن گفت پسرم، این موفقیت و پیروزی رو به تو تبریک میگم تو کار بسیار بزرگی انجام دادی اون دوازده نفر قوی ترین و تواناترین مردان پادشاه بودن و تا به حال هیچ مردی نتونست کاری رو که تو کردی انجام بده بلای من هم از پیر به خاطر اینکه اونو شفا داده بود و به خاطر اون همه محبت و لطف تشکر کرد اونا اون شب رو تو سه قسمت سپری کردن قسمت اول شب رو به خوردن و نوشیدن گذروندن، قسمت دوم رو به آواز خواندن و قصه گفتن پرداختن و قسمت سوم شب رو هم به خوابی راحت و خوش فرو رفتن. بلایمن اون شب و راحت و آسوده خوابید، خوابی که حقیقتاً به اون احتیاج داشت. وقتی بیدار شد، پیرزن سبونه‌اش رو آماده کرده بود و اون بعد از خوردن سبونه و تشکر از پیرزن دوباره به قصر پادشاه رفت و به ستونهای قصر ضربه زد. پادشاه همچنان که سر خودش را از پنجره بیرون نیاورد گفت چی میخوای؟ بلای من گفت هفتصد مرد از طرف راستم هفتصد مرد از طرف چپم هفتصد مرد از پشتم و تعداد زیادی هم از روبرویم پادشاه این چنین کرد اونا از چهار دروازه بزرگ و از چهار طرف به سویش حجوم آوردند. بلایمن مثل شاهینی تیز پرواز که در فصل زمستون به میان دسته بزرگی از پرنده های کوچیک رفته باشه، از میان اونها راهی درست کرد و در نهایت همشون رو هلاک کرد. بعد سرای اونا رو یه جا، بدنهاشون رو یه جا و سلاحاشون رو هم یه جای دیگه ریخت و به کلبه پیرزن رفت. این پیروزی بسیار بزرگ رو به تو تبریک میگم پسرم. تو در برابر تمامشون پیروز شدی و این باور نکردنیه اون دیگه خودش هم جرعت نداره در مقابل تو ظاهر بشه و با تو بجنگه چون حتم دارم که شکست میخوره. بنابراین دخترش رو به تو میده پیرزن برای بلایمن غذای خوبی آماده کرد بلایمن پسر سیب آنچنان جنگید که خالهای روی پیشونی و سرش ناپدید شد اون اون شب رو هم مانند شب پیش خوب خوابید صبح روز بعد بعد از خوردن سبونه و قصر رفت پادشاه پایین اومد، بازوی بلایمن رو گرفت و اونو به قسمتی از قصر برد که دخترش اونجا بود و دست دخترش رو تو دست اون گذاشت. دختر زیبای پادشاه ای رو که با نام و نام خانوادگی سلطنتیش روی اون حک شده بود، در انگشتای بلایمن انداخت و به این ترتیب اونا با هم ازدواج کردند. روز بعد بلایمن به فکر دایاش افتاد و پیش خودش گفت مدت زیادیه که اونا منتظر من هستند، شاید هم به ایرلند برگشتن. سپس پادشاه کرد و گفت من میرم دااییام و ملاقات کنم بعد بر می حالا دیگه بلایمن منو همسرش وارث سلطنت بودن. پادشاه گفت چیز دیگه ای باعث ناراحتی من شده در همسایگی ما ماسهقولول زندگی میکنن که همه از دستشون خسته شدن اونا قاارتگرن یه روز به اینجا حمله کردن تمام دربونای من و کشتن و منو از پادشاهیم بیرون کردن بلایمن من گفت: پس در این صورت تا حساب اون رو نرسم، شما رو ترک نمی کنم. فقط به من بگین اونا کجان؟ پادشاه گفت، بله حتما. بعد تمام راهنمایی های لازم رو به اون کرد. بلای من اول سراغ جوانترین قولی که تمام دربونه رو کشته بود رفت. ناگهان یه صدایی اصراف قصد پیچید. خوبه، خوبه، این صدای قول بود. خوبه، گمان نمی کنم این شخص بتونه کاری از پیش ببره، سپس بیرون اومد و تا چشمش به بلای من افتاد گفت آدم تیر روز و بدبخت فکر کنم میخوای سرتو به باد بدی چطور جرعت کردی به قصر من بیای بلای من گفت من اینجا اومدم تا با تو کمی شوخی و بازی کنم گول گفت این کار بسیار مشکلیه تو میخوای با دوم شیر بازی کنی بسیار خوب چطور می جنگی؟ آیا دوست داری بدون سلاح با من بجنگی؟ یا با شمشیر میجنگی می جنگی؟ بلای من گفت من با شمشیر می جنگم. قول بیدرنگ به داخل قص رفت و لباس رزم پوشید و کلاه خود و سرش کرد و سپر و نیزش رو برداشت و آماده برای جنگ از قصر بیرون اومد. بلای من جوراب نرم و گلدارش رو بالا کشید کمربند ابریشمی ارزشمندش رو محکم کرد و شمشیر تیزش رو که زیر جامش پنهان بود آماده کرد تا سر گول از بدنش جدا کنه. چون بلای من با دست راست میجنگید غلاف شمشیرش رو سمت چپ کمرش بسته بود اون سعید داشت بسیار عادلانه بجنگه و مطمئن بود که در این نبرد پیروز میشه اونا پس از اعلام جنگ مثل دو گاو نر خشمگین به هم حمله کردند اون قدر با قدرت جنگیدند که زمینهای نرم سفت و محکم و زمینهای سخت نرم شد بلندی های زمین هموار و پستیهاش پر شد. صدای شمشیراشون به انعکاس صدای وحشتناک برخورد موجای سنگین به سخره ها میمونست. وقتی که جنگشون اوج گرفت، زمین مصر چرخ آسیاب چرخید و به آسمان رفت و آسمون هم به زمین اومد. هر کسی که از پایین دنیا به بالا میومد، اون دو رو میدید که در حال جنگن. شب از راه میرسید که بلایمن گرسنش شد و از شدت گرسنگی و عصبانیت ناگهان توی چشم به هم زدن شمشیرشو بلند کرد و اونو از میون گردن غول عبور داد و سرشو از تنش جدا کرد بعد یه شاخه باریک و محکم از درختی که اون نزدیکی بود جدا کرد و اونو از یک گوش غول وارد و از گوش دیگش بیرون کشید سپس سر غول رو روی شمشیرش انداخت و شمشیر روشونش گذاشت و به طرف قصر پادشاه حرکت کرد وقتی به نزدیکی های قصر رسید مردی رو دید که محکم به یه درخت بسته شده اون مرد که اسمش هانگ آپ بود گفت به شما تبریک میگم مبارزه جوان پیشتر از این هیچ مردی نتونست چنین کار مهمی انجام بده حالا لطفاً این جوان مرد منو از این بند نجات بده بلای من پرسید چه مدتی که به این درخت بسته شدی؟ آیا مدت زیادیه؟ مرد گفت من هفت ساله که اینجام بلایمن متعجبانه گفت: مسلما تو این هفت سال مردم زیادی از اینجا رد شدن چرا هیچ کدوم از اونا تو رو از این بند رها نکردند؟ من هم آزادت نمی کنم بعد به طرف قصر رفت و سر بریده قول و گوشه‌ای انداخت. سر قول اونقدر بزرگ بود که در سر برخورد با زمین قصر لرزید. پادشاه از اون صدای مهیب سر و سیم پایین اومد و بلایمن رو دید که صحیح و سالم کنار سر بزرگ قول ایستاده. شادمانه دستش رو فشرد و اون بوسید. اونا اون شب رو هم مثل شب قبل بسیار خوب گذروندن صبح روز بعد بلایمن من به سراغ قول دوم رفت اونو به مبارزه طلبید. قول دوسر هر دوسر سر خودشو بیرون آورد و گفت ای بی شرف، تو بودی که دیشب برادر منو کشتی من دنده ها تو خورد میکنم گمان میکنم که دیگه زندگی به تو سر اومده و آخرین نفس هات رو میکشی در این فکرم که به چه روشی تو رو حلوک کنم و چگونه نفست رو بگیرم. بلای من گفت تا زمانی که من اینجام تو هیچ پیشنهادی نمیتونی بدی اما فکر میکنم تو رو هم مثل برادرت بکشم اول با قلداری گفت آیا تو جرأت اینو داری که با من بجنگی؟ بلایمن من گفت بله خیلی زیاد و برای همین کارم به اینجا اومدم اول گفت چطور میجنگی؟ آیا تن به تن میجنگی یا با شمشیر تیز قدیمی؟ بلای من گفت من از کودکی با ها کشتی میگرفتم. بنابراین کشتی رو ترجیح میدم دو حریف با هم گلاویز شدند و سخت به هم پیچیدند به طوری که از زمین زیر پایشان چشمه آب فوران کرد و قول که سنگین تر بود تو اون زمین گلالود و باطلاق مانند گرفتار شد بلای من شانه های قول و محکم گرفت و با قدرت به پایین فشار داد و اونو تا کمر تو اون زمین نرم فرو برد حالا سرت رو ببرم قول گفت به من رحم کن و من ببخش در عوض اتاق گنجینم رو به تو میدم، همینطور تمام تلوها و نقره به تو میبخشم. بلایمن گفت، اگه تو جای من و من جای تو بودم، آیا منو آزاد میکردی؟ گول گفت، نه، نمیکردم. تو همین لحظه بلایمن شمشیرش رو کشید، اونو با خونسردی بالا برد و با یه ضربه کاری هر دو سر قولو از تنش جدا کرد. بعد سرا رو برداشت و به طرف قصر به راه افتاد. تو راه از کنار همون مردی که به درخت بسته شده بود گذشت همون مردی که اسمش هانگاپ بود بلایمن به قصر رسید و سرهای قولو به زمین انداخت این دفعه قصر شدیدتر از دفعه پیش لرزید. اما پادشاه نه تنها نترسید بلکه خوشحال هم شد چون قضیه رو فهمیده بود با دخترش پایین اومد اونا اون قژ بلایمن رو بوسیدن که بلایمن داشت خفه میشد بعد اون گریه کردن که خسته کاملا خیس شد سپس با حوله ابریشمی گرانبها اونو خوب خشک کردن و انواع و اقسام غذاها و نوشیدنی های خوب و همچنین اصل یونانی براش آوردن. با هر لقمه ای که بلایمن من میخورد اونا مقداری اصل تو دهانش میذاشتن. من گفت: من تسلیمم، دیگه کافیه. دارم فکر می کنم که اگه تشنه نبودم اون وقت چی میشد. اون شب هم خوشتر از شب پیش گذشت و بعد همگی به خواب خوش فرو رفتن. صبح روز بعد با اولین تابش خورشید بر زمین بلای من با اینکه بسیار خسته بود بلند شد. اون بعد از دو روز جنگ مداوم حالا باید به سراغ قول سوم میرفت که تو جای بسیار دورتری زندگی میکرد. من رو پادشاه کرد و گفت من یه اسب میخوام. هر نوع اسبی که میخواد باشه، فقط یه اسب باشه. پادشاه گفت پیدا کردنش آسونه. من یه اسب دارم که مدت هفت سال از استبل بیرون نیومده، اما از گندم طلایی و آبای شفاف بهاری تغذیه کرده. اگه فکر میکنی میتونی سوارش بشی اونو بردار بلایمن به استبر رفت اسب وقتی مرد غریبه را دید به شدت شیه کشید و جفتک انداخت و به طرف بلایمن چرخید میخواست بلایمن را از وسط نصف کنه بلایمن با اکثر عملی سری گوشای و گرفت و محکم پیچوند عصف روی دو پاش بلند شد و دستاشو مانند مشت زنها به هوا پرتاب کرد اما بعد از مدتی آروم گرفت بلای من افسار اسب رو به دست گرفت و با یه جهش کوتاه روی اون نشست و از استبر خارج شد. اون با خون سردی و درایت اسب بی‌اسالحت را رام کرد. اسبی که زین نشده بود و حتی کسی نمیدونست چند رگه است. نه ویژگی در اون با هم ترکیب شده بود. سه ویژگی از یه گاو نر، سه ویژگی از یه روباه، سه ویژگی از یه خربوش چشمای سیاه بسیار درشت گردن پهن و پیشانی برجسته را از گاو نر داشت با سرعت برق به طرف تپه دویدن فرز و سری دور زدن و جهش بسیار بلند و از یه خرگوش داشت حوش و حیلگری و راه رفتن با غرور با زیرکی هر دو طرف جاده از زیر نظر داشتن و تیزبین بودن و عروباه داشت بلایمن من بادها رو پشت سر میذاشت و به سرعت میتاخت طوفانی که اگر های درشت داشت و زوزه کشان از پشت سرش میومد، هرگز نتونست به اون برسه بلای من تاخت و تاخت تا سرانجام به قصر قول رسید این قول سه سر داشت سه سر بزرگ و ترسناک قول سه سر همچنان که نشسته بود چند فوت وحشتناک کرد که تمام قصرش لرزید سپس به بیرون نگاه کرد و بهت زدی گفت اوه تو آدم پست و کسیف من حاضرم شرط ببندم که برادرامو تو کشتی؟ حالا که به پای خودت به اینجا اومدی کارم رو راحت کردی زندگی که شایسته تو باشه همین دور و من هنوز نمیدونم به چه وضعی تو رو نابود کنم. بلای من گفت: تا زمانی که من اینجام تو لازم نیست پیشنهادی بدی. اوول سه سر از اینکه دید بلای من میخواد با اون به جنگه خندید بلایمن من گفت: زمانی که میخندی صورتت زشت میشه. دوست دارم وقتی گریه میکنی هم صورتت رو ببینم که از زشتی شبیه مرگ میشه. قول با خشم گفت چطور میجنگی با دست یا با شمشیر؟ بلایمن گفت با تو باید با شمشیر جنگید. شمشیراشونو رو بیرون کشیدن و مانند دو گاو وحشی به هم حمله کردند. همچنان میجنگیدن که روز به نیمه رسید. نزدیکی‌های بعد از ظهر بود که قول سسر چندین ضربه سنگین به بلایمن زد. در این اسنا سینه سرخی در میان تپه ها پیدا شد و روبروی بلایمن نشست و گفت: اوه بلایمن پسر سیب از سرزمین ایرلند که از همسر دور هستی همسری که دوست داشت اینک سرش روی شونهات باشه و ادامه داد در اینجا کسی نمیتونه تو رو نجات بده مگر من که میتونم دو برگ سبز روی چشمات بذارم تا اونا رو از سیلی باد محفوظ نگهداره حالا بین خورشید و قول به ایست و به خاطر بیار خونایی رو که برای وطنمون ایرلند ریخته شد بلای من نصیحت های سینه سرخ و گوش داد و هر دو جنگ رو بر روی هم قرار گرفتن قول نمیتونست به درستی حریف خودشو ببینه زیرا نور خورشید چشماشو آزار میداد اون گاهی خودشو خم میکرد تا بلایمن رو به چنگ بیاره و یکبار که خودش رو کش میداد و جلو میومد کلاه خودش کمی جابجا جا شد بلایمن به گردن لخت غول نگاهی کرد و رو درست روی اون نزدیک گوشاش فرو برد خون مثل فواره از گردن قول بیرون زد و با شدت به اطراف پاشید تا اینکه کم کمکم بیرمق و بیحال شد زانوهاش خم شد و به زمین افتاد بلایمن هر سر قول و برید و چوب از سواریشو شد در فرو برد بعد چوبه روی شونش گذاشت و به طرف قصر روان شد در بین راه باز هم هانگاپ از او خواهش کرد تا اونو از بند آزاد کنه اما بلایمن باز هم خواهش اونو رد کرد و به راهش ادامه داد آنگاه برای همسر بلایمن و بچه دار نشدنش دعا خوند و همینطور به دعا خوندن ادامه داد تا اینکه بلایمن لحظه اندیشید و سپس برگشت و بندها رو باز کرد با همون سرعتی که اولین تناب رو باز کرد خودش با دو تناب بسته شد کار به جایی رسید که هرچه تنابهای اون مرد باز میشد تنابهای بلایمن دو برابر می شود. تنابهای بلایمن آنچنان محکم شده بود که گویی پنج مرد قوی اونو بستند. هونگوب که اکنون آزاد شده بود اسب بلایمن رو برداشت و سرهای قول را همونجا انداخت و به طرف قصر پادشاه و جایی که دختر پادشاه اونجا بود شتافت. اونجا انگشتش رو روی شونه های دختر گذاشت و با هیلو، فریب و به هر ترتیبی که بود اونو از قصر بیرون آورد و بدون درنگ و با فاصله از اونجا دور شد. بلایمن دو روز همچنان بسته بود تا اینکه یکی از خدمتکارهای پادشاه که از اون راه میگذشت گفت: "اوه oh, پسرم تو اینجا بسته شدی؟" هانگاپ هنگوپو تو آزاد کردی اگه مثل دو دفعه گذشته از کنارش رد میشدی و اونو آزاد نمیکردی، حالا وضعیت تو اینطوری نبود بلای من گفت من هیچ کمکی از کسی نمیخوام و باید این بند رو تحمل کنم خدمتکار گفت این درست نیست که من اینجا باشم و تو به درخت بسته شده باشی تا نجاتت ندم از اینجا تکون نمیخورم و بندها رو باز کرد همون بلایی که سر بلایی من اومده بود به سر خدمتکار اومد و اون همچنان که بل منو از بندها رها می کرد خودش با اونها بسته میشد بللا من که آزاد شده بود گفت من همیشه شنیدم که میگن قدرت و زور از هر سهر و جادویی قویتره. تره. پس به طرف درخت رفت با قدرت اون را از ریشه درآورد و با شمشیر تکه تکه کرد و خدمتکار را از بند رها کرد اونا به طرف قصر رفتن همین که به قصر رسیدن پادشاهو دیدند دیدن که پشت میزی نشسته و سرش رو تو دستش گرفته و همینطور مثل سیل اشک میریزه. پادشاه اونچنان گریه میکرد که زمین زیر پاش خیست شده بود بلایمن پرسید: چه خبر شده؟ پادشاه پاسخ داد، هانگاپ به اینجا اومد و گفت که سر غول رو بریده و دخترم رو با خودش برد. بلایمن وقتی که دید همسرش رو بوده شده و نمیدونه به کدوم طرف برای نجاتش بره، به حال جنون رسید پادشاه که رو بسیار مسترب و مشوش دید قبل از اینکه اون حرفی بزنه یا حرکتی بکنه گفت بهتره امشب و همینجا بمونی و صبح روز بعد در حالی که یک سفره تو دستش بود به طرف بلایمن اومد و گفت تو این سفری که می‌خوای بری ممکنه گرسنه بشی اما نتونی غذا به دست بیاری این سفره رو هر جا پنگ کنی هر غذایی که دوست داشته باشی و رو اون می‌بینی بلایمن که خیلی پریشون بود بیدرنگ سفره را از پادشاه گرفت و مثل باد از نظر دور شد. اون تمام روز روزو بدون لحظه توقف دوید و زمانی که خورشید آروم آروم پشت کوه مخفی میشد به پناهگاهی رسید. چشمش باقی مونده آتشی افتاد که هنوز گرم بود. با خودش گفت امشب همینجا میمونم و دورتر نمیرم. سفره رو پهن کرد. لحظه‌ای بعد انواع قساه‌های شاهانه روی سفره محیا بود. بلایمن که خیلی گرسنه بود شروع به خوردن کرد هنوز مدت زیادی اخوردنش خوردنش نمیگذشت که یه سگ شکاری از شکاف کوهها به طرفش اومد و کمی دورتر ایستاد به نظر میرسید که از نزدیک شدن به بلایمن میترسه و از همون فاصله رو به اون کرد و گفت ممکن یه کم نون به من بدی تا به بچههام بدم سه روزی که نتونستم شکار کنم و بچههام گرسنند حتی خورده نون یا نون سوخت هم بدی ممنون میشم بلایمن گفت البته که میدم بیا جلوتر و هر غذایی که میخوای بخور و هر چه که میتونی برای بچه هات ببر. سگ شکاری گفت شما خیلی مهربون و دل رحم استین و مثل اون دوز نیستین که سه شب پیش اینجا بود. وقتی از اون تغذیه کمک کردم چنان لگدی به شونم زد که شونم شکست و الان سه روزه که نمیتونم برای بچه های غذا پیدا کنم. خانومی که با اون دوز بود بسیار ناراحت و غمگین بود، طوری که نه چیزی میخورد و نه چیزی مینوشید. و تمام مدت هم عشق میریخت. هر وقت برات مشکلی پیش اومد که به کمک من احتیاج داشتی فقط کافیه صدا کنی سگ شکاری ترانومی. اون وقت من به کمک تو میام. بلای من گفت یکم از شب و پیش من بمون چون من تنهام. بعد از اون هر چقدر قضا که میتونی با خودت ببر. سگ شکاری تا نیمه های شب پیش بلای من موند و بعد از اون آهنگ رفتن کرد. بلایمن نیز به وعده عمل کرد و به اندازه ای که سگ شکاری میتونست غذا ببره به اون غذا داد. سگ شکاری هم از اون بسیار تشکر کرد. بلایمن تا سپیده صبح همونجا موند و پس از اون دوباره صفرش رو پهن کرد و هرچی میخواست خورد. بعد تمام روز و بدون لحظه درنگ و با سرعت به سفرش ادامه داد با این امید که قبل از تاریک شدن هوا بتونه قصر هانگاپ رو پیدا کنه اون که دیگه از همسرش خبری به دست آورده بود با جرعت و شهامت بیشتری به جستجو پرداخت هوا کامل تاریک شده بود بلای من خسته و نگران به جایی رسید که بیشباهت به جای شب پیش نبود با خودش فکر کرد که بهتر شب رو همونجا بمونه و چون خیلی گرسنه بود سفرهشو پهن کرد تا غذای مقوی و متنوع شاهانه بخوره. همچنان که غذا میخورد، شاهینی از راه رسید و از اون خواهش کرد کمی خورده نون یا نون سوخته به اون بده تا بتونه برای بچه های گرسنش ببره. بلای من گفت، روی سفره بیا و هرچی میخوای بخور و هرچقدم که میتونی با خودت ببر. شاهین سر سفره اومد و اونقدر غذا خورد که سیر سیر شد، بعد از بلای من تشکر کرد و گفت شما خیلی مهربونین مثل اون دوز نیستین که سه شب پیش اینجا بود وقتی که از اون تقاضای غذا کردم شاخه بزرگی به طرفم پرت کرد که به بالم خورد و بالم شکست بلای من گفت من اینجا تنهام ممکنه یکم از شب و پیش من بمونی شاهین با کمال میل قبول کرد و گفت خانومی که با اون دوز بود غمگین و مسترب بود اون هیچی نمی خورد و غذاش فقط گریه کردم بود. نیمه های شب بود که شاهین از جا برخاست تا بره. بلایمن به اندازه کافی به اون غذا داد تا برای بچه هاش ببره. شاهین هم به بلایمن گفت اگه روزی به کمک من احتیاج داشتی فقط کافیه صدا کنی شاهین صخره سرد. اون موقع من حاضر میشم. و بعد از تشکر از بلایمن رفت تا بچه هاش بیشتر از این گرسنه نمونن. بلای من بسیار خوشحال شد که دوباره خبری از همسرش رسیده و بعد از خوابی سبک و کوتاه بیدار شد. و خورد و برای رفتن آماده شد. او با جست و خیزهای زیاد از کوههای مرتفع گذشت و با چابکی از عرض جنگل پردرخت عبور کرد. تمام روز و بیوقفه به سفرش ادامه داد تا اینکه هوا کم کم رو به تاریکی گذاشت. اون جایی رو برای خودش در نظر گرفت و همونجا موند. سفرهشو پهن کرد تا خودشو با قضاهای خوشمزه سیر کنه که از مسیر رودخونه سمور آبی به اون نزدیک شد. مقابلش استاد و گفت ممکنه کمی خورده نون یا نون سوخته به من بدی تا برای بچه هام ببرم. بلای من مقدار بسیار زیادی غذا به سمور آبی داد که هم بخوره هم برای بچه هاش ببره. سمور گفت محبتهای تو رو هرگز فراموش نمی کنم. هر زمان به کمک من احتیاج داشتی صدا بزن سمور آبی برکه کفالود. اون وقت من حاضر خواهم شد تو مثل اون دوز نیستی که سه شب پیش اینجا بود همسر شما هم با اون بود همسرتون تمام شب و گریه کرد نه چیزی خورد نه چیزی نوشید تو فردا ظهر به قصر هانگاپ میرسی اون قصر یه قصر جادوییه. مثل آسیاب مدام میچرخه و هیچکی جز خود هانگاپ نمیتونه واردش بشه سمور آبی به خونش رفت و بلای من هم موقع ظهر به قصر هانگاپ رسید از صحبتهایی که سمور کرده بود اونجا رو به راحتی شناخت بلایمن ایستاد و به قصر نگاه کرد همچنان که قصر آروم میچرخید پنجرهی روبروی بلایمن قرار گرفت که همسرش پشت اون بود همسر بلایمن به سرعت پنجره رو باز کرد و با اشاره دست به بلایمن گفت که از اونجا دور بشه اون گمان میکرد که هیچکی نمی‌تونه بر هانگ آب برتری پیدا کنه چون هیچکی نتونسته بود اونو بکشه و در تمام نبردها پیروز شده بود بلایمن گفت من تمام این راه اومدم تا تو رو از دست این یاقی نجات بدم نگران نباش و پنجره رو همون جور باز بذار بعد قدم به عقب برداشت و با پرشی بلند خودش رو به پنجره رسوند و وارد اتاق شد زمانی که هانگاپ به درخت بسته شده بود، حساب و کتابهای قصرش انجام نمیشد. بنابراین اون رفته بود تا کارهای باقی مونده را انجام بده. او با زن بلایمن قرار گذاشته بود که بعد از یک سال و یک روز آزادش کنه. همسر بلایمن میدونست که هانگاپ کی برمیگرده. بنابراین تصمیم گرفت که درست قبل از اومدن اون بلایمن رو مخفی کنه و همین کارم هم کرد. وقتی که هانگاپ وارد اتاق شد، با صدای بلند گفت: خیلی خوبه. ظاهرا غیر از تو کس دیگه‌ای هم اینجا هست چون من بوی غریبه احساس میکنم گمان نمی کنم یه مرد ایرلندی اینجا باشه همسر بلای من گفت چطور یه مرد ایرلندی میتونه اینجا باشه تنها کسی که از ایرلند اینجا سینه سرخه من چنگالی به طرفش پرتاب کردم و این بویی که به مشامتو تو میرسه بوی خونه اونه که روی چنگال مونده هانگاپ گفت اوه بله ممکنه همین طور باشه بلایمن و همسرش در این فکر بودند که اونو از میون بردارن تا اینکه سرانجام نقشه جالبی کشیدند زن رو به هانگاپ کرد و گفت خیلی عجیبه که مردی به بزرگی تو همیشه تنها سفر کنه. پدر من تو تمام سفراش همیشه یه نفر برای نگهبانی با خودش می برد. هانگاپ صداشو کمی بلند کرد و گفت من هیچ نگهبانی نمی خوام چون کسی قادر نیست منو بکشه چطور هانگ گفت زندگی من اونجاست داخل اون کنده درخت زن گفت گمون نکنم اونجا جای خوبی باشه و برات کمی سخته که تا اونجا بری بهتر اونو جایی درون قصر مخفی کنی هانگ جواب داد بهتر اینجا همونجاست فردای اون روز وقتی که هانگاپ رفت همسر بلایمن تمام ماجرا رو برای بلایمن تعریف کرد بلایمن گفت زندگی اون اونجا نیست امشب دوباره ازش حرف بکش. زن تمام قصر رو جستجو کرد و هرچی پیدا کرد مثل پارچه ابریشمی و اطلسی و جواهرات همه رو, رو روی همون کنده درخت گذاشت و در واقع اونو با پارچه های زرق و برقدار و جواهرات پوشوند هنگام غروب وقتی که هانگاپ به خونه برگشت و کنده درخت و اینجوری دید، از ته دل خندید زن گفت چرا میخندی؟ هانگ پاسخ داد دلم برات میسوزه زندگی من که اونجا نیست زن پس از شنیدن این حرف خوشحال و خوشنود شد اما برای چند لحظه خشک و بی حرکت موند تا اینکه هانگاپ نگران شد که نکنه اون مرده باشه بعد رو به زن کرد و گفت چی شده؟ زن گفت گمان نکنم که با من شوخی و مذاه کنی تو خودت میدونی که من دوستت دارم بنابراین چرا سعی میکنی گولم بزنی؟ هانگاپ به شکل عجیبی خوشحال بود اون زن رو به طرف پنجره برد و درخت بسیار بزرگی رو که درست رو روبروش بود به اون نشون داد و پرسید اون درخت رو میبینی؟ زن جواب داد بله آیا تبری رو که کنار پایه تخت هم هست میبینی و با دست نشونش داد و ادامه داد؟ من هرگز نمیمیرم مگر اینکه یک یه قهرمانی پیدا بشه که بتونه با این تبر و با یه ضربه اون درخت بزرگ رو از نکتاریشه تا ریشه به نیم کنه و اگه قهرمانی پیدا بشه که بتونه این کارو انجام بده، یک قوچ از زیر درخت بیرون میاد و به سرعت باد میدوه هیچ چیز بر روی زمین نمیتونه اون قوچو بگیره مگر سگ شکاری کوچکی ترانامی و اگه اون قوچ توسط سگ شکار بشه، فورا به یه اردک تبدیل میشه. اردک هم بلافاصله پرواز میکنه و بالای دریاها میره. هیچی روی زمین نمیتونه اون اردک رو بگیره یا آسیبی به اون برسونه مگر شاهین صخره سرد و اگه اون اردک توسط شاهین شکار بشه تخمی میذاره که به دریا میفته و در عمیق ترین نقطه دریا آروم میگیره هیچ چی روی زمین نمیتونه اون تخم رو پیدا کنه مگر سمور برکه کفالود و اگر اون تخم هم پیدا شد قهرمان باید با یه ضربه به خال سیاه رنگی که درست زیر سینه چپ هست بزنه در اون صورتی که میتونه قلبم رو بدره و منو از پادر بیاره. در ضمن اگه کسی حتی اون درخت رو لمس کنه من هر کجا که باشم میفهمم. صبح روز بعد وقتی اون قصر رو ترک کرد بلای من تبر رو برداشت و با یه ضربه درخت رو از نکت تا ریشش به دونیم کرد. گوچ از زیر ریشه درخت بیرون جهید و دویید. بلای من اونقدر به دنبالش دوید که خسته و ناتوان شد و درست در همین لحظه بود که به یاد سگ شکاری کوچک افتاد و فریاد زد سگ شکاری کوچک ترانامی کجایی؟ سگ پاسخ داد من اینجام اگه صدام نمی کردی نمی تونستم بیام و در یک چشم به هم زدن گوچ رو در رو بود گوچ فاصله تبدیل به اردکی شد که بدون درنگ پرواز کرد و بر فراز دریاها پر کشید. بلایمن شاهین سخری سرد رو صدا زد. شاهین مثل برق اردک و در هوا رو بود. اردک هم تخم گذاشت. بلایمن سمور برکه کفالود رو صدا زد. سمور پس از مدت کوتاهی در حالی که تخم پرنده تو دهنش بود نزد بلایمن اومد. بلایمن تخم را برداشت و مثل باد به طرف قصر روان شد. وقتی به قصر رسید، هانگاپ هنوز نیومده بود. اون زمانی که درخت از وسط نس شد، قصر را ترک کرده بود. بلایمن درو باز کرد و وارد قصر شد و پشت در ایستاد. تولی نکشید که هانگاپو دید که به طرف قصر میاد. وقتی هانگاپ نزدیکتر شد، بلایمن دید که اون بسیار خسته و بی از بس که عرق کرده بود، صورت و لباسش خیس بود و از گرمای زیاد پیراهنش باز و سینش لخت بود وقتی به چند قدمی قصر رسید بلای من که خال سیاه رو زیر سینش دیده بود در حرکتی سری نوک شمشیرش رو درست وسط خال فرود آورد و لحظاتی بعد هانگاپ دیگه مرده بود اونو همه خوشحال بودند. شاهین سخری سرد، سگ ترانامی و سمور برکه کفالود این سه فرزندای پادشاهی بودند که قبلا در همون قصر زندگی میکرد و هانگاپ اونو از پای در آورده بود. اکنون اونها دوباره زندگی رو تو قصر شروع میکردن اون شب جشن گرفتن و شادی کردن صبح روز بعد بلایمن از سه برادر خداحافظی کرد و اونا رو در قصر و قلمرو به خودشون باقی گذاشت و قبل از رفتن به اونا گفت هر وقت به کمک نیاز داشتین کافی پیغامی به قصر پدر همسرم هم بفرستین. بلایمن در راه برگشت شبا رو همون جایی به سر برد که موقع رفتن به سر برده بود وقتی که پادشاه دخترش و بلایمن رو دید داشت از خوشحالی پر در آورد. اونها چند شب و روز جشن گرفتن و خوش گذروندند. بلایمن حالا به فکر دایاش افتاده بود. تو این چند روز نقشه کشیده بود که چگونه به کشتیش دست پیدا کنه و بالاخره وقتی به کشتیش رسید، دایاش هنوز منتظرش بودند. بلایمن همسرش رو با خودش به کشتی برد. وقتی که همه چیز برای حرکت آماده شد، ناگهان بلایمن یادش اومد که برای مادرش هدیه ای ببره. پس همسرش رو تو کشتی، پیش دایاش گذاشت و با عجله به قصب برگشت. دایهای بلایمن نیز فوراً فرمان حرکت به سوی ایرلند رو دادند با اینکه بلایمن به سرعت برگشته بود اما نه اثری از کشتی بود و نه اثری از همسرش و داییاش بلایمن مثل دیوونه ها به هر طرف میدوید اون اصلا مایل نبود به قصر پدرزنش برگرده آشفته و پریشون به جنگل زد و مثل حیوان های وحشی زندگی کرد یه روز که به کناره جنگل اومده بود کشتی رو نزدیک ساحل دید همچنان که به کشتی نگاه می کرد، یه یهو شعور از دست رفتش و باز یافت. کاپیتان کشتی که اون رو دید گفت: این باید یه نوع حیوان وحشی باشه که کمتر دیده شده، با موهای بسیار ژولیده و کثیف که تا پشت زانوهاش رشد کرده. چند نفر برید و ببینید اونجا چه خبره و اگه اون یک انسانه به کشتی بیاریدش. پنج مرد با قایقی به طرف خشکی رفتن و بلایمن رو صدا زدن. اون گفت من ایرلندی هستم و در اینجا از گرسنگی و سرما دارم از بین میرم. اونا اونو با خودشون به کشتی بردن. کاپیتان کشتی به مهربانی با بلایمن رفتار کرد. موهاشو کوتاه کرد، لباس تمیز و خوبی به اون پوشوند و غذاهای بامزا و لذیذی که بلایمن مدتها از اونا محروم بود به اون داد. بندری که کاپیتان کشتی قرار بود به اون بره اتفاقا همون شهری بود که پدر بزرگ بلایمن اونجا تو قصرش زندگی میکرد. بلایمن سفرش را از همون بندر آغاز کرده بود وقتی که اونا به بندر نزدیک می دریا بسیار تمیز و آروم بود کشتی همچنان رفت و رفت تا به اسکله رسید بلایمن به شهر رفت و در خیابونی ایستاد. اونجا درشکه های زیادی با احسپای قبراغ می و آزوغ و خاربار متنوعی به جایی می بردن زیادی هم دنبال درشکه ها می دویدن. و همه به یه مقصد می‌رفتند. بلایمن از یکی از اون کسایی که در اون ازدحام به دنبال درشکه‌ها می‌دوید، پرسید: چرا تمام این آدمو به یه طرف میرن؟ مرد پاسخ داد: شما باید غریبه باشید چون همه دونن که اونا به قصر میرن. امشب جشن ازدواج پسر بزرگ پادشاهه و تازه عروس هم تنها دختر پادشاه ساحل سفیده که دوازده ماه پیش به اینجا اومده. بلایمن گفت: بله، من غریبه و تازه از دریا و سفر اومدم. مرد گفت در جشن عروسی پسر پادشاه همه دعوتن از طبقه بالا تا طبقه پایین جامعه از ثروتمند تا فقیر بلای من با خودش گفت من هم مثل بقیه میرم و با انبوه مردم به طرف قصر بره افتاد اون تو اون شلوغی با گدای پیر و تنومندی که کت بلند و خاکستری رنگی پوشیده بود آشنا شد و به اون گفت من کت تو رو می خرم ممکن اونو به من بفروشی گدا گفت این حرفای با مزه رو به کس دیگه ای بگو بلای من پاسخ داد شوخی نمی کنم اگه اونو به من بفروشی من میخرم. گدا هم قیمت بسیار بالایی به اون پیشنهاد کرد. بلایمن گفت این هم پولی که گفتید. گدا پولو گرفت و کتش رو در آورد و به بلای من داد و از اونجا دور شد. بلای من گفت برگرد اینجا من برات کارهای بهتری انجام خواهم داد و به کمک و همکاری تو احتیاج دارم. اونا با هم دیگه به قصد رفتن. درست رو به روی آشپسخونه محبته بزرگی بود که آدمهای فقیر اونجا در هم میلولیدن. هرکی سعی میکرد جای بهتر و نزدیکتری به آشپزخونه پیدا کنه تا غذای بیشتری به دست بیاره. وقتی که بلای من وارد شد همه رو به سکوت دعوت کرد و خیلی زود کنترل اونجا رو به دستش گرفت. اون خودش نه چیزی میخورد و نه چیزی مینوشید اما بقیه گداها و بق خدمتکارا متحیر بودن که این گدای بزرگ چرا نه چیزی میخوره نه چیزی مینوشه یکی از خدمتکارای لیوان بزرگ پر از نوشیدنی به اون داد بلای من هم با یه جرعه نصف لیوان رو سر کشید بعد حلقه ازدواجش رو تو لیوان انداخت و به خدمتکار گفت این لیوان لیوانو به نو عروس بده و بگو اون گدای بزرگ نصف لیوان رو به شما برمیگردونه تا به سلامتی خودتون بنوشید عروس تعجب کرد به همچنان که لیوان در دستش بود به طرف پنجره رفت ناگهان حلقه رو کف لیوان دید، اونو برداشت و شناخت. سراسیمه و با خوشحالی وحس ناپذیری به میان مردم رفت و بلایمنو دید. همه فکر میکردن که گدا سحر و جادو کرده. خدمتکارا از هر طرف گدا رو احاطه کردن تا اونو بگیرن. دختر پادشاه فریاد زد: "هیچکی حق نداره به اون دست بزنه" و اونو به اتاق ملکه برد. بلایمن فوراً در رو قفل کرد. عروس کمربندی آورد و به کمر ملکه بست. اون کمربند کمربند حقیقت و راستی بود و اگر به کمر کسی بسته می و آن شخص حقیقت رو نمی گفت محکم و محکم تر می شد تا اینکه فرد دروغ گروه می کشت عروس گفت حالا به من بگو فرزند واقعی شما چه کسیه؟ ملکه چند بار به دروغ پاسخ داد و هر بار کمربند محکم و محکم تر شد اونقدر محکم شد که ملکه فریاد زد فرزند واقعی من دخترمه و بعد از اون همه حقایق رو گفت و تعریف کرد که اون دو نفر چگونه اون رو بودن وقتی مادر بلای من چشمهاش به پسرش افتاد از خوشحالی زیاد، اشک شوق، ریخت و ساعتها اونو در آغوش نگه داشت پادشاه دستور داد شاخه های خشک و هیزم جمعوری و آتش بزرگی بپا کردند دو پسرش رو محکم به همدیگه بست و تو آتیش سوزوند و خاکستر کرد بلای من که همسرش رو پیدا کرده بود نزد پدر بزرگش اومد اونا سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب